صبح زود برخواستن تمام روز را عوض می کند. کارها هم چقدر جلو می میافتد؟ میدانی صبح زود اتر غریبی دارد اتری که در انتهای صبح زود تمام می شود و هرگز به مشام آنها که تا کمرکش ظهر می خوبند نمیرسد. کسالت کسالت می آورد خواب, خواب. تو می گویی اما یک روز در هفته یا در هر پانزده روز لاقل یک روز باید حق داشته باشیم که دیر از خواب برخیزیم. حتی خیلی دیر. اگر دخترک سهرخیزت بگذارد. اگر نگذاشت هم در رخت خواب میمانیم. بیدار و بیکار. لاقل یکی دو ساعت. حرفی نیست. تو به زیر پله می روی. هنوز هم فروختن کتاب‌های کهنه سیاسی را دوست داری خواهر این کتابها چیست که می‌فروشی برادر من دیگر مارکسی نیستم اما این کتابها را نباید سوزاند یا تبرزد به درد محققان و دانشجویان می‌خورد هیچ کتاب دیگری به درد محققان نمی‌خورد خواهر خوب نگاه نکردید من مجموعه آثار استاد متهری را هم می‌فروشم برادر از این گذشته من و شوهرم به قدر کافی در نظام قبلی سینجیم شده ایم دیگر دوست نداریم که سینجیم بشویم شما فقط اجازه دارید اعداممان من کنید ما کتبا در نهایت رضایت این اجازه را به شما می دهیم. ولی ما چنین قصدی نداریم خواهر قصد احترامی به شما و همسرتان را هم نداریم ما فقط وظیفه را انجام می دهیم. احتیاط کنید برادرها احتیاط کنید، این نوع وظایف معمولا از نقطه خیر آغاز می شود، به شر شیطانی ختم. از آغازش به تا به ختمش نرسید، از کناره بروید تا فرو نروید برادرها، تا جایی که بتوانیم همین کار را می خواهر خدا نگهدار، صبر کنید مطلبی را هم به عرضتان برسانم و بعد خدا نگهدار بگوییم. سازمان امنیت را مصدق بنیان نهاد ماده پنج حکومت نظامی هم در دوره او تثبیت شد و مصدق یک آزادی آزادیخواه به تمام معنا بود این تنها زمان بود که آن سازمان و ماده را به چیزی یک پارچه جهنمی تبدیل کرد و مردم را به قیام علیه ابلیس برانگیخت حالا شما مردان جوان با ایمان مراقب باشید در ساقط کردن حکومتی که به راستی مردمی است یا ما اینطور اعتقاد داریم سهیم نشوید برادرها سعی میکنیم خواهر خدا نگهدارتان باشد بعد از این که به شاگردهایم میرسم و یکی دو جا کتاب سفارش میدهم که جور کنند و بفرستند زیر پله و با آقای مددی به دیدن مردی میرویم که میخواهد کتابخانه شخصیش را بفروشد و مددی کتابها را میبیند و مسلط قیمت میگذارد و به شرکت میخریم و باقی کارها را می سپارم دست مددی به دیدنت می آیم آن ته نشستهی و کتاب می خانی مرد جوان کتاب فروش ما که حال دیگر شریک ما هم هست های زن و مرد جوانی را می بندد زیر چشمی نگاه می کنم چهل نامه کوتاه به همسرم را روی همه می بینم تو قرق در خواندنی و حضور مرا هنوز حس نکردی سلام قانون ست کتاب افتاد اگر ست کتاب را واقعا خوانده ای و تمام کرده ای و مفاهیم آن را کاملا درک کرده ای و برخی از آنها را پیوسته باز میخوانی خانی ای نیست که گهگاه یک کتاب تازه را به دلیلی مقبول زیر سر بگذاری به شرط آنکه فقط زمانهای کاملا بی مصرف را به خواندن آن کتاب اختصاص بدهی زمانهایی را که متعلق به من و بچه ها نیست و به هیچ کار مفید نمی آید سلام، این را من گفتم، حالت چطور است؟ خوبم، و دیگر چه فرق می کند که چه کسی گفته باشد؟ از حالا تا پنج بعد ظهر بی برنامه موویل، مسئله‌ای دارم که شاید در کتابخانه ملی حل شود، یا در کتاب های المعارف بزرگ اسلامی، یا یک کتابخانه دیگر. روزهای دوشنبه را بعد از کار برای حل این گونه مسائل گذاشتم. موافقی؟ فقط همین؟ خاموشی قبار گرفته کتابخانهها ها نفسم را تنگ می کند. هفته یک روز و چند ساعت بگذار اینگونه نفس تنگه های دانشمندانه را احساس کنیم. بعد سری به موزه آبگی میزنیم که در همان نزدیکی کتابخانه ملیست. ملی است. آنجا ده هزار سال تاریخ برق میزند. این کوزه بلور را نگاه کن، شاید که عاشقی آن را برای معشوقی ساخته باشد این همه ظرافت تنها از دستهای خوب یک عاشق می تواند به خمیر داغ شیشه منتقل شود با یاد دوست این عشق دانها را نگاه کن میگویند آن وقت‌ها اگر عاشقی به سفر می‌رفت محبوب او گریه‌های فراغ را چکه چکه در این عشق دان‌ها می‌ریخت تا به هنگام باز آمدن دوست به او بنماید که تا چه حد از دوریش در عذاب بوده است مادر بزرگم می گفت خیلی ها آب نمک را به جای عشق در این بلورهای خلوص می ریختند و پیش روی مرد خسته از سفر بازگشته می گذاشتند مهم نیست همیشه شبه عشق در کنار عشق بوده است شبه صداقت در کنار صداقت اما هرگز از رونق بازار عشق و صداقت چیزی کاسته نشده است تو عاشق صادق باش و بمان دنیا را به حال خود بگذار و دنیا را هم به جانب خلوص و عشق بران این درست است آه بیا این گردن بند بلور رنگین کمانی را نگاه کن چه لحظه شفافی بوده است، آن لحظه که این گردن بند را دوستی به گردن محبوب خویش انداخته است. میدانی که دست نامحرم نباید به گردن آن محبوب بخورد، میدانم. مرد سوار است دخترک پیاده. دخترک این گردم بند را بگیر و نگاهش دار. تا اگر از این نبرد باز نگشتم، دستکم گاهی، و یاد مردی که سخت خاطرت را میخواست بیفتی. ممنونم آقا، تا دم مرگ نگهش میدارم آقا. آهای دختر این گردنبند بلور تراش خورده را از کجا آور دوستی به من هدیه داد پدر؟ آن دوست مرد بود؟ البته پدر و تو بی اجازه من از دست مردی هدیه ای گرفته ای؟ از شما پدر؟ اگر اجازه میگرفتم اجازه میدادی هرگز هرگز آن مرد را هم به خاک سیاه میانداختم رفت تا با دشمنان وطن بجنگد و سر مبارکش بر خاک سیاه بیفتد زحمتت را کم کرد پدر تو را برمیدارم و شانه به شانه هم به راه میفتیم دستهای تو هنوز تراوت سوالان تو را دارد تراوت نخستین لحظه ای، که دستهایت را لمس کردم اما دستهای تو دیگر دستهای یک دبیر ادبیات نیست زبر است و خاک خورده و قدری زمخت و اینطور البته بهتر است وقتی شکنجهت می‌کردند با دستهایت همکاری داشتند لا روزی یک بار به تو می‌گویم اصل بر نگرد و تو باز می‌گردی با مچهایم بله با انگوشت هایم بله با کف دست هایم ما یادم نمیآید. آن شلاق سیمی را به کجا می زدند؟بیتربیت به پشتم به آن شلاقها که با همان ضربه اول خون می میگفتند شلاق سلطنتی بطری سلطنتی، صندلی سلطنتی و چیزهای دیگر سلطنتی هم داشتند. در واقع آنجا را کرده بودند دربار چقدر میخندیدند، اما نه از ته قلب اصلا قلبی در کار نبود غالبا عصبی بودند و افسرده گرچه بسیار هم احمق و تا حد زیادی عقب افتاده ذهنی